من اگه میتونستم یه چیزی به آقای خامنه ای بگم بهشون گفتم آقای خامنه ای چه رأی مردم رو بشماری چه نشماری همیشه تویی که بازنده ملت ملک ایرانی مرسی کامبیس جام این ها مجدم هست من سرهنگ نیستم من حقودان هستم Just man, I'll listen سلام ساعت 5 عصر جمعه به وقت ایران این پادکست در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز امروز 31 خرداد 92 رهبر ایران هنوز آیت الله سید علی خامنی رئیس جمهور ایران از 13 مرداد 92 حسن روحانی من کامبیز حسینی و تیم ملی ایران رفت جام جهانی و آمد بهار جانها ای شاخ تر ر آمد بهار جان هاه شاخ تر به رافساه شاخطر به رافسا شاخ تر به رافسا پدر به رافسا پدر به رافسا از باگذمونیک باگ ذر به رافسا خوشگمر به رافسا این هفته بعد خداحافظی کار پخش نشده یه از جدید ترین آلبوم سعیدش هم پخش میکنیم که چم ما دیگه تازه میاد بیرون این آهنگ رو من با ازای سعید تقدیم میکنم به همه برواقس جنوب ایران چه عرب چه غیر عرب همه همه بوشه خورم شر مسجد سلیمون آبادان برزیلته یا بابا یا ماما سلامون سلام سلام سلامون سلام سلام سلام های یا بابا یا ماما سلامون واقعا هفته شادمانی ملت و بنده نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم و بیشتر میخوام موزیک گوش کنیم این هفته برقصا برقصا و اینا ولی در میان شادمانی و خوشحالی میرسیم به یک عدد نگرانی و مکافات که در این چند هفته اخیر واقعا من ما شما همه شما نمیدونم ما اینجا در ساعت 5 از خواب و خوراک افتاده بودیم و آن هم چیزی نبود جز گم شدن محمود احمدی نجاد. رئیس جمهور اسبق ایران حالی گفتم ری جور سبق ایران. ما اطلاعیه زدیم و اعلام کردیم که آقای امش گم شده پیداش نیست ولی ما بعد از بازی ایران کره زدیم شبکه دو، دیدیم اخبار داره پخش میکنه و ناگهان مدرک دکترای بین المللی برای رئیس دولت دهم ده رئیس دانشگاه بین المللی دارالحکمه میهمان امروز دولتی ها بود تا بعد از پایان جلسه حیات دولت دکتورای افتخاری این دانشگاه رو تقدیم رئیس جمهور کنه ها دکتورای چی؟ دکتورای بین المللی بینلی المللی دکتر بین المللی دیگه چیه دکتر دکتره دیگه بین المللی غیر بین المللی یعنی فردا داستان اینه که شما میتونید دکتر بشی و دکتر تو محلتون مثلا بشی. مثلا ملت اصلا شما بهوش باشید که از این پس از دکتر محمود به بعد. از این پس شما اگر جهانی فکر نمی کنید بیزونید مثلا اگر مشهدی در مش دکتر مشهد بشید یا اگر در محله مثلا سیمتری دوم احمد, احمد آباد مشهد زندگی می دکتر اپلای کنید بشید دکتر سیمتری دوم بعد اگر که مثلا بعدا پیشرفت بکنید تو اینا شبکه دو جهانی شو بهتون میده از طریق دانشگاه دارال چشیلک در کانادا در هفته گذشتم ما تیم ملی قهرمان شد رفت پیش دکتور بینوملالی و ایشون در حد مورینیو حرف زد میشنویم تحلیل آقای احمدی بای بای رو درباره ایران در برابر کره. تک تکتون برتر از اولا بود واقعا تک تک بچه ها برتر از تیم بکن تک تک بچه ها برتر از تیم کره قبول. دیگه چی؟ واقعاً تک تک بچه ها برتر از تیم کره. خب کره بالاخره از ما بیشتر رفته جام جهانی‌ها؟ هفت بارها؟ نه، آید دمتون. هفت ده بار رفته جام جهانی. نه. بگو ده بار، هفت بار نرفته. 7 بار رفته. یه بارم چرا مرحله دوم؟ مرحله دوم چیه؟ بابا 4م شد. آیمه بجو 4م شد. 4م تو خود کره بود دیگه اونجا خود رانتمانم هست. <تصحنت> ها <تصفيق> تو کره چی هست؟ <تصفيق> رانسمانتم <تن> هست <تصفيق> رانسمان تو کره هست تو ایران اگه, ما، اگه پس ما میزبان جام جهانی بشیم چی میشه؟ چه <تصفيق> تو, <تصفيق> تو ایران میاد <بیارته> شما بنید <تصفيق> <تصفيق> تو کره رانت هست چهارم شدن وقتی جام جهانی میزبانش بودن اگه ما میزبانش باشیم اول میشیم چقدر رانت تو ایران هست که شما میدونی و میتونه تیم ملی ایران رو قهرمان جهان بکنه برزیل هم ما بزنیم قهرمان بشیم گاهی ای ملت ایران ای جماعت هوشیار من با خودم فکر میکنم وقتی احمدی نژاد بره چه کسی دری وری بگه ما بذاریم تو برناممون ولی همیشه آخرش به این نتیجه میرسم که ندیدن پدیده ای به نام محمود احمدی نژاد موهبتی خواهد بود برای من شما و همه ما هم اخبار هفته گذشته این که مادر ندا آقا سلطان در چهارمین سال روز کشته شدن دخترش به کمپین بینرمالی حقوق بشر در ایران گفت قرار بود دادگاه برگزار شود اما در چهار سال گذشته دادگاه برگزار نشد پرونده پروندم همشنان مفتوح هست من که دیگر نمیدونم چه بگویم امیدوارم فقط یک روز قاتل را به من نشان بدهند فقط نشان بدهند و بگویند این قاتل بچه شماست من جای آیت الله ای بودم از آب می شدم الان می تو سنگ خجالت بکشید قاتل ندا رو معرفی کنید حسنم که تحلیف نشده رئیس جنبور نیستنوز رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت به دلیل سیاست های قوه قضایی مسائل بین مللی حقوق بشری اعدام مجرمان در ملعه آم تجویز نمی شد خدا رو شکر یکی یه چیزی گفت اگر در گذشته ایشون ادامه دادند اگر در گذشته اعدامی در ملای عام صورت می گرفت به دلیل وجود شرایط استثنایی بود ولی با توجه به تصویر برداری این گونه مراسم و پخش آن در رسانه های دنیا دیدگاه قوه غذایی این است که دیگر اعدام در ملای عام صورت نگیرد ما این دیدگاه قوه غذایی بسیار بسیار می که این اعدام ها صورت نگیرد اعدام بد است ولی اعدام در ملای عام ملت ضد بشری است و اگر این اتفاق در ایران رخ بیفته و دیگه در ملای عام کسی رو به روش قرون وستایی دار نزنیم بنده به شخصه جشت میگیرم همتون رو دعوت می کنم خونم نیویورک به صرف شیر سرد و کلوچه لاهیجان حسنم که تعلیق نشده رئیس نیست نیستنوس الان رقم گذشته بیش از سه ماه از بازداشت برادران کردپور مقامات قضایی تنها دوبار اجازه ملاقات خانواده این دو روزنامه نگار کرد رو به اونها دادند برادران کردپور اسفند سال گذشته دستگیر شدند الان سه ماهه که در بازداشت موقت موقعت سه ماه بازداشت موقت. به سر میبرن بهشون اجازه دیدن وکالهاشونم بازداشت سه سماهی موقعتت بخوره تو سر من آیه جمهوری اسلامی حسنم که با تعلیف نشده رئیس جمهور نیستن سعید مدنی، فعال ملی مذهبی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و از فعالان و حامیان جنبش سبز با صدور حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای, آقای بنامه پیر عباسی به تحمل 6 سال حبس در زندان بندر عباس و 10 سال تبعید به این شهر محکوم شد حسنم که تحلیف نشده رئیس جمهور نیست هنوز یتی پور فازل وکیل خانواده ستاره بهشتی که پیگیر پرونده قتل این وبلاگ نویس است در نامه خطاب به حسن روحانی با ابراز نگرانی از روند طولانی رسیدگی به این پرونده از سوی مسئولان گفته هفت ماه از مراجعه خانواده او به من و 8 ماه هم از تشکیل پرونده قتل این جوان 32 ساله که در 16 آبان 91 اتفاق افتاد میگذره لیکن تا کنون از بازپرسی به دادگاه برای رسیدگی ارسال نگشته است حسن هم در جواب گفت که تحلیف نشده رئیس جمهور نیست هنوی و اما بدترین خبر هفته این که خدای تار ایران استاد جلیل شهناز درگذشت حسن هیچی در این مورد نگفت خب هفته پیش ما اعلام کردیم که ملت به ما زنگ بزنید و بگید که اگر میخواستید یک جمله به آقای خامنه‌ای بگید چی می‌گفتید داستان مال هفته پیش بود ولی شما هنوز دارید زنگ می‌زنید و ما هم برای اینکه نامردی نشه یه چند تا دیگه پخش می‌کنیم رئیس بزنوا رو تو ضبط برای ملت پخش کن بره. فقره خامنه‌ای خسته نباشید میگم به خاطر اینکه بعد سال 84 مردم مادر 27 سال از آخوندها خسته شده بوده با برگ به سحمی نژاد حرکت که سال 92 وقتی علو دمبرا خونده بود باهم تا به روحانی رسید. سلام زنگ زدم که با صدایی گرفتم بچم صدای گرفته شده برای دوستای داخل ایرانم و بهش بگم فردا بگیم آقای سید علی حسینی، خاصی پوش بدیم. <تصفح> بگیم چیکاره اون اولی، دیدیم ارزشش نداریم خاصی منطقه با دست بزنیم، دلیل بیاریم برای کارت که اشتباه دیدیم ارزشش ندارییم. حتی خاصی محلت نذاریم دیدیم ارزش اینم ندارییم. فقط یک ریز میگیرم. ما 23 سالمونه همسنه ولایت تو اما من آقای من توی این 23 سال خیلی بیشتر از 74 سال هم به تو پیر شدیم آقای خامنه ای آقای روحانی که الان شدیده جمهور تبریک میگم بهتون همه ای خواسته من به عنوان یه جوون ایرانی اینه که این سروازی را از جلما بردارید من بدبخ بتونم برگردم دهاتمون بتونم برگردم ایرانمون خواسته ای زیادیه شما رو به هر کی ه چه واسه جوانایی که مثل خودم ایرانن چه واسه جوانایی که خارج از ایران هن. این هر بازی رو از جلو ما به خدا دیگه من هیچ هیچی ازتون نمیخوام بذارین برگردین همین سلام کام چرا خودت صحبت نمی کنی نوار می مزاحم مزاهم وقتت نمی منتظر پادکستم پا و می بگم به این آقا بگی موضوع رو کش نده کشت داره در می ره دیم کنمو مرغم نتو ببند و مردو مراحت کن. قربانم راست. خلاص. من از این مادر مهربان بسیار بسیار بسیار تشکر می کنم که یک برنامه رو گوش میدن و دو گوشی رو برداشتند و زنگ زدند. زنده باشی ان شاء چشمت مثل چشمتون سلام مسلس. بسات مس گندم زاب. در قلب تماش خون. دین قلبت یک من خون. دشمات مثل ممسلس ل مثل گند دزار دیقلبه تمش خون دیقلبت یک من خون چشممات مثل مسلس می دی دی مینقلبه تو همش خوست می دای تو یک من خوست میدنم مینقلبه تو همش خوست رو سیاه و سفید تقسیم کنیم ببینیم کجاشو میگیریم میرسیم به خوب بعد زشت <تصفيق> شخصت خوب این هفته به انتخاب شما رضا گوچان نجاد است آقای گوچان نژاد فوروارد تیم ملی فوتبال ایرانه که تگل ایران رو در بازی با کره زد و رفتیم جام جهانی، کوچان نجات که بهش میگن گوچی مؤدب ولی با صلابت بازی کرد و از فرصتی که دستش اومد بهترین گل رو زد به سر مردم ایران و شما باهاش حال کردید. شما اونجا تو ایران باهاش حال کردید، ما خارج از ایران چه پایکوبی ها که نکردیم. از گوچی متشکریم که انتخاب کرد برای ایران بازی کنه. تشکر میکنیم کنیم از کیروش که دانش مربیگریش رو کم فروشی نمی کنه. تشکر می از تمام بازیکن ملی استقلالیاش، پرسپولیسیاش همگی دست مریزاد. یه ذره آقا گوچی رو رئیس تشویق کنید. گوچی، گوچی، گوچی. آقا در برنامه این هفته شخصیت بد و زشت نداریم. یعنی گشتیم ولی آخرش تصمیم گرفتیم که این هفته به افتخار موج مثبتی که تو دل مردم افتاده شخصیت بد و زشت نداشته بشیم جماعت بد زشت رو بفرستیم مرخصی هفته مرخصی این هفته به آقا و خانم شخصیت بد و شخصیت زشت رو و کوفت و اینا یه جورایی تقدیم میشه به همه شخصیت هایی که به قول آقای بر پیشانیش همچین یه چیز سیاه بود ظرفیت داشتن که توی این بخش باشن اما یه هفته مهلت دارن که از پرت و پلاگوی و مردم آزاری و احمد خاتمی بازی در آوردن فاصله بگیرند و نذارند که سوژه این برنامه بشن و ما نور رو همینجوری مثل نورفکنهای استادیوم تختی تبریز صاف بندازیم تو صورتشون دیگه بچه با حالی ما از حد گذشته این هفته برین خوش باشین شخصت های بد و زشته هفته که به صورت بلقوول و همینجوری تو فهرست ما هستید و حالا حالها با اتون کار داریم به افتخار نداشتن بدی و زشتی موزیک شاد بذار برایم درد خب میرسیم به حرف آخر این هفته حرف آخر این هفته در مورد یه آدمیه که یه تفنگ داشت تو این توفنگش گلوله داشت در سال 88 سیوم خورداد یه نفری که وقتی توفنگش رو در آورد میدونست وقتی ماشه رو بکشه زندگی رو از یه آدمی ای میگیره یه نفری که خودش میدونه کیه و هر شب که میخواد بخوابه میدونه یه نفر یک خانواده یک ملت یه دنیایی دلش گرفت خون شد از جان دادن ندا آقا سلطان جلوی دوبی اون یه نفر وقتی تفنگش رو از زیر پیرهنش در می آورد و نشونه میرفت به سمت اون آدمای دیگه نمیدونم دستش لرزید یا نلرزید یه لحظه عرق سرد به پیشونیش نشست یا ننشست یاد خواهر مادر، زن و دیگر آدمهای زندگیش که دوستشون داشت افتاد یا نیفتاد اما هرچی که بود، هر کی که بود شلیک کرد و گلوله نشست به قلب آدم دیگهی که اون طرف باستده بود تظاهرات مردم رو نگاه میکرد ندا آقا سلطان اون چند لحظه آخر زندگی ندار ما دیدیم، شما دیدید، دنیا دید و اه که چه خشونت سردی داشت آن مرد با یک تفنگ و یه روح بی حس غیر آشنا از اون لحظه و ساعت شوم چهار سال میگذره و در این مدت هر چه کردند خانواده ندا و نداها کسی پاسخ نداده به عشقهای سرازی رو دلهای شکسته خانواده های اونها و ملیون ها نفری که هنوز از شک که اون لحظه های خشن گمنام بیرون نیومدند که نیومدند دستگاه غذایی ایرانم که قرومنش برم توی این مدت چهار سال گذشته فقط املت میپخت به دستور آقا برای محمود خان احمدین جاد جیکش نزده در این مورد تا این لحظه این دستگاه غذایی و اطلاعاتی ملت با این همه یال و کوپال سربازهان و برادرهان و گمنامش اون دستگاه جاسوس بگیر سه سوته اش اون مزدور درست 24 ساعته اون به اقدام امنیت ملی بگیر و به بند مثل آبخوردنش که به قول خودشون مگس رو هوا اگه فکر توحیم به رهبری یا تشویش ازهان اومی بکنه سه سوت میزننش بیخ دیوار تخ هنوز نتونستن قاتل ندارو پیدا و اون آدم های با تفنگ و کلت کمری که سال ۸ همینجوری به طرف مردم شلک میکردند امروز همینجوری با یه مسونیت آهنین دارن توی خیابون شهر راه میرن بستنی میخورن پارک میرن شاید جایی در تاکسی کنار شما مینشینند یا در استادیوم آزادی برای تیم محبوبشون ربده میزنن و خیالشون راحته که اون گلوله هایی که نشوندن توی قلب همبتان خودشون اغ... حقوبتی براشون نداشته و نداره چهار سال گذشت و ندا و نداها شدند برگی از کارنامه صادق لاریجانی، حیدر مسلمی و محسن ایجی و همه اونایی که چشون رو بستند به اجرای عدالت و حاضر نیستند برای اینکه به وجهه آقا گندش در بیاد اصلا آقا نزدیک بشن به این پرونده. این هفته حرف آخرم با کسانی است که میتوانند آدم بکشند و بدون وجدان درد شبها ماهواره نگاه کنند. حرف آخر من این هفته این است کاشکی می دانستم. چگونه می شود ترازوی عدل آن مملکت را میزان کرد ولی کار من نیست بابا جان پس دکتاتور دکتاتور تشکر تشکر تشکر تشکر, تشکر. تشکر. تشکر. این بود در ساعت پنج اشرا این هفته ملت این برنامه محصولی است از کمپین بلرمالی حقوق بشر در ایران و کمپین به عنوان حسن ختام برنامه میخواد که شما بدونید هزار روز از حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد میگذره و هنوز این ستن بدون تفهیم اتحام و برگزاری دادگاهی آزادی های اولیه انسانیشون ازشون سلب شده تا هفته دیگه و پنجه اصر دیگه بپا حسن بپا حسن حسن حسن حسن حسن, حسن. خب این قسمت برنامه برای شماست فقط شما شما که هوای در ساعت 5 عصر تا آخرش یعنی تا اینجا دارید همونطور که ابتدای برنامه گفتم در اینجا جدیدترین کار سعید شمبزاده رو براتون میذاریم که برای اولین بار از این برنامه پخش میشه این شما و این هم سعید شمبزاده و آهنگ یا ماما بابا يا Boo l bye